رب العالمین الله علی سیدنا رسول در مباحث زن به مرحوم هم متعرض شدم یه بحثی در اول در خجیت زن و بعدم ادهی از مقاردی که ایشان می فرمان بینید که زن در آن خجیت داره مثل ظهورات و مثل اجماع منبول و غیر داره در کیفیت بحث ما بر اینکه که به اصطلاح محل مراجع آقای راحت باشه از کردیم روی همین کتاب مرحوم استاد کتاب به اصطلاح مصباح اصول ایشان در این که الان در جلد دو اصطلاح از صفحه 101 ایشان متعرض شدن ما برای روشن شدن بحث اولن تقریبا یک اجمالی از اون مقداری که الان محل کلام متعرض میشیم از خود کلمات ایشان بعده. اون وقت وارد دنباله بحث اینشان یعنی بعد تحقیق مطلع ایشان در اینجا فرمودن که در بحث زن جهاتی از بحث هست جهت اولا همین بحثی که خیلی بین احلا مشروع شده که زن مثل قرط نیست که خود جید از لوازمش و مختزیاتش ماشید نه به نه علت تامه و نه به نحو به اصطلاح مقتضی و حجیت زن احتیاج به جعل شرعی داره لعدم کونی و عدم کونی حجته فی نفسه بله اون ایشون وارد همین توضیح مطلب که حجیت زن از قبیل حجیت قهر نیست بله بعد بله متعرض کلامی از صاحب کفایه شدند راجع به این که ثبوت اشاره کردن به بحث انصدا که ثبوت مقدمات و طرور حالات موجب لی و عقلا عقلن این برامبر این که ندیجه انصدا به اصطلاح حکومت باشه بله. این چون که این کلام که باید روزی است چون اگر ما قاعده به حکومت بشیم یا کشف کشف نیزن حجت باشه شرعن در حال انصداد علم و علم هم بر تقدیر کشف عقل فقط کاشف و حاکم نیست و بر تقدیر حکومت هم عقل نمیگه به اصطلاح زن حجت میگه دایره احتیاط کن میشه دیگه چون این بحث توی بحث انصداد هست ما خیلی اینجا الان متعرض نشو اون مهمی که در باب انصداد این مطلب که شونهای خو میجا اشاره دار کلران علما اشاره نکرده به خلاصش اینه که در مقدمات انصداد ما به چه نتیجه میرسیم؟ به این نتیجه میرسیم که در صورت انصداد باب علم و علمی به حکم عقل ما برسیم به زن و حجیت زن یا عقل حکم نمی که زن به جزه عقل حکم میکنه که احتیاط در شما واجبه حالا که انصداد باب علم علمی شده و اگر بخواید در جمعی موارد احتیاط بکنید در هرچ واقع میشید فکر عقل حکم میکنه به تبییز اختیار خود درک یعنی اختیار در همه موارد لازم نیست اونی که عقل حکم میکنه تبییز اختیار پس دو معناست یک معنا این که نتیجه دلیل انصدار عقل کش میکنه از حجیت زن در پیش شاره دلیل دوم نه خود عقل حکم میکنه اونم باز دو دو مبناز. یک معنا اغل عقل حکم میکنه زن حجته یک مبنا که اقل حک میکنه احتیاط در جمعی اطراف لازم نیست فقط در مار ممنون انسان احتیاط میکن نه اینکه زننگ اون شده. حال خوبی نظرشون اینه من دم مباحث انتداد چون همش فرزی و ال تگیرره خیلی خودمونه در گیر مده انصلااب نمیکن. بعد ایشان بله متعرضزی کلامی شدن که ممکن است بگیم که، باعثو گفتن زن کافی در صعود تکلیف نه در مقام صعود تکلیف و مرموم وسال از این كلام خراب بودن که حالا یه خدا آ مراجعه کنن خاصی که بخوام من اینجا ارتب بکنم نداری مثلا به نقطه خاص خلاصه بحث اول ایشان جهت اول ایشان همون بحثی است که ما در مواریس سابق بله متعرض شدیم و اون مثل این بود که بنای آقایان این است که حجیت غرف ذاتی ولا فنا رو بیدون زن چون درش کشف این آقای کوی توضیح نداره به جای این یک دو سطحه ای که معموم فرمینه این توضیح بنده نمی فرمینه شروع کرد و زن چون درش جهت حد هست قابلیت جعل داره شک چون شون کسابیه اینه قابلیت جعل نداره این هر خلاصه هم معمون پس ما قطع داریم که ذاتن حجت داریم. زن داریم که ذاتن حجت نیست اما قابلیت داریم. جهل حجیت داریم شکم داریم که اصلا قابلیت جهل نداریم شکم داریم شکم داریم طرف ایم. و ما در بحث گذشته توضیح از که اون نقطه فنی آیان حجیت و مسابقه با تشت میدارن اینم آقای خوی شکم نرده حجیت پیشیم یعنی کش رو اونجا که کشف ذاتیه و جزاتیه اونجا که کشف ناقص حجیت ناقصی اونجا که اساس کشف امکانان جعل این خلاصه بعد این خلاصه دو صفحه ایشان به تعبیر روشن‌تری که من عرض کردم فرقی هم بین مقام ثبوت تکلیف و ثبوت تکلیف نداره البته یکم مطلبی که پای نه اولون بعدم رد فرمودن ناظرش هم نظر نکردن که چیه اون شخص جهت دوم دو این خلاصه جهت اول بود چون ما به زبان دیگری و به تحبیر دیگری واضح تر توضیحش داریم جهت دوم در امکان تعبد به زنه آیا امکان داری یا چون یک کلامی نرشد از ادهی از اعلام که امکان تعبد به زن نیست این شد علمای ما اینجا بحث امکان رو هم مخرق کردن امکان تعبد به زن من ایش آلا تو بحث خبره به عرض اعرض این از اولی که بحث حجیت خبر آمد خط عقل گرای یعنی معتزله منکر حجیت خبر بودن اصلا منکر بود یا اشک منکر حجیت زنه کلا که ان عرض الله همینطور یعنی اشکالاتی داره حجیت اشکالاتی داره که یکیشم در اخبار و ان هست الله تا رسیدیم ان شاء الله همین سری که بگیم ان شاء خواهد آمد مسائل بر اثر کرد و هر کرد اشاراتی تو معتزله در اخبار معلواز می‌کردند بوی مبانی اونها وارد جواب هایی که آ کوی یا اینها کافی نیست. اون اشکال زر در کلمات اعامم ما درست تقید نشده. اشکال وارد. کلم کل اون آشاش رسید به مسئله <تصفح> ثر حجیت خبر واحد از سال ۱ و سال ش م شده. دپت میکنیم از سال ۱۶ تا ه، که بیشترش هم حجیت خبر عدر مطرح شد که خبر عدر خود شد مؤسزه لیه که بعد آن منکر شدن گفتن امکان نداره محاضی داره که آلا بعد عرض میکنم من جمله ابن قبه که ابن قبه یا جزو بزرگان ماست چون ما الان این خود من عرض میکنم خیلی کلمات ابن قبه در اختیار ما نیست که دعیان بدونیم که شون مسئله چی بوده اون چیه که ما الان خود من عرض میکنم چ اون چی کرده در بحث قیبت نبود فرمودن که مضموم چه صدو او تو اوائل کمال ت... و دین رو بردن حالا بحثاش شدیه اقلی خاصی حالا میتونم فلسطی یه رو خاصی ها یه جایشن که نقلی میشه در و دامونه نمیتونم باید از مقابی بگن 60 بوده مثلا مثلا اشون نبونتانه که روالتنه مفارضه باید اشون خیلی هر جو کلامه با تدیر خودتان در بوده ها میگه خود امینه بیزن این کلماتشون متعالد یعنی از این کلمات تو کتاب صدوق آمده که این جوره این کلمات خیلی مشرفهه این کلماتی که از ابن قبل یعنی مشرفه به این معنی محسله درستی نداره نگه ما اصطلاحاتشون اول شد زمانشونی نیستم قرار در این بحث امکان تعبد اون معارضه اصلی کناب ابن قبه گفت امکان نداره تعبد این بحثی که تلاش در اثرت به این مناسبت آوین بحث امکان رو در اینجا مطرح کردم اون که مشکل درست کرد در معقول اقسام برای امکان نوشتن امکان حقوقی قوانین ذاتی فلان استعلادی اینا برداشتن این بحث کردن که این امکان در اینجا چیه این در روایتی نیست در نفس نیست که وارد بحث بشی یعنی اینجا یک مناسبتی ادعازاره نوع معنی امکان شده نه اینکه تو قاضی فقه توی کلا ما امکن یعنی کنه هیزن فاو هیزن یا کل ما امکن باشه که اینجوری نتیجه خونده شده کل ما امکن یا کل ما امکن در اونجا متعرض امکان شده از این فقهای معاصر ما که مثلا امکان چن تو معنا داره بحث فلسفی باشه دیگه اینجوری نشده بعد اینشون میفرمون ولی علماء انه ليس امکان الامکان احتمال کما هو المراد فی قولهم علمانی شکر رئیزه کل ما قراره اینجا کل ما بخونیم از که را را اگر متصل نوشته بشه کل مدنی برسرد میشه و ما از کل ما این سور قضیه شکریه است کل ما کنم تو تاره و نارمو اما اگر متصل نوشته بشه ما موصوله اصنی کل کلم معرب میشه اینجا کل ما قراره سمکه منرغرائه دیشون نقل با خای خوی فدعه و فضرب و فی بغتل امکان مالم یزد که زاد یزدو بازال و دال زال اخت دال به معنای منع. در قرآن هم استعمال شد این کلمة. مالم یزد که ان و سات البرهان در خود کتاب شیخ و رئیس قایم البرهان حالا یا قایم البرهان سات البرهان مازوه البرهان دیگر خیلی دون کلماتش خیلی هم که چون عبارت ش خود عبارت اصلی ایشون تحبیر به قوله هم کرده خود اصل عبارت و شیخ و رئیسه. به نظر اونجا قا امول شاید شما توی این کتاب که کامپیوتر آن دارن پیدا بکنن که به نظرم اونجا تو اون عبارت رو ال... قا امول برهان قا امول برهان شده اما ظاهرا عبارت اصلی قا امول برهانه خیلی خود بعد نرشن لوضوح عمل احتمال امرون تکوینی غیر کما انهو لیسه مراد امکان ذاتی در موقع امکان ذاتی مثل اجتماع نقیده که امکان نداره لوضوح انت تعبده به زن لیسه ممایه کم عرب به استحالتی برای مراد و منحال امکان الوقوعی یعنی واقع شده در خارج این استحاله ای نمیان به معنی انهو حل یعنی زن من وقوع تعبده به زن محال و او به نصف سهل الحکیم مطلقا در مقابل بده تحلیل الحرام و تحلیل الحلام املا بعد ایشون پس امکان رو معناي امکان حقوقی گرفتن در مقابل امکان ذاتی حالا من یکی یکی توضیح از او کده این مطلبی که ایشون فرمین که را در امکان احتمال است مطلبی ایشان درسته اما خب این تقریبی که ایشون فرمیندن به ذهن یاد ناقص باشه قیلی که عبارت هم ناقص نهر اصل خدمتون که ببینید من ارز کردم ما در برخی از مسائل موارد یک لحظه رو به کار که مراد واقعیت خام و لفظم لفظا ممکنه مراد اون باشه ما چه روان کردیم اصلی به نام اصالت الادم داریم مثلا میگن ززد ادراش شده من یه تا چند دقیقش که بچه نداشت مثلا نداشت پس هنوز این اصالتون عدم که میگن اگر اصل هم هست و مثلا مورد ت نظر خودمان قرار گرفته این مورد اسات عدم واقعی نیست نه اینکه اسصافات عدم مفادش این باشه که این واقعا هم بچه نداره. چون میگن هر ممکنه لیتون فیز ایون به علته این نه اینکه مثلا کسی تصور بکنه که این مثلا فیزاته لیتون پسی نیست نیست واقعی اونجا اونجایم اسات عدم اادراهی این, این, این ما توزیعنی اون ننی صورتی از بچه در ذهن ما نیامده. اون اساس عدم ادراکی، مراز ادراکی. این کل ما قرار است همکه حفی خدا وفی امکان. این امکان ادراکیه، نه اون امکانی که در معقول دشواز میشه. دو تا امکانه. یک امکان که در معقول، اون اقسام امکان در قابل انتظار در موضع وجود اون یک امر متأصله، یعنی متأصل مبدأ انتظار. چون امکان یه امر انتظایی است که از یک مبدأ متأصل انتظار میشه مثل فوقیت این سخت نسبت به ما انتظار میشه هم من حذیری از هم صحردم میان نگاه میکنه این شیء رو به تیات وجود مثلا خیر از چه میگن ممکن یا واجب یا ممکن اونجا میگن اینه که حساب میکنه اما این مرادش اینه که کل ما قرعه سمعه که من القرائد نادرها روش او خوی من القرائد فرد هو قدائه في بؤره امکان این امکان امکان اجرایی مراد نیست چون حساب العدل بطور ادراکی بود اشتباه این, این امکان مراد نیست در اینجا این احتمال در حقیقت احتمال. مراد احتمال افتراقه <تصفيق> علاویشون میشه احتمال این احتمال کاش ایشون احتمال امکان یه ما تبدیل امکان اجرایی یه نته امکان یک امر اجرایی شماست یه دفعه امکان نه انتظا از یک امر واقعی از یک حیقتی میشه اون امکان در فلسفه بحثی میشه، اون امکانی که در فلسفه معبول بحثی میشه. اونه نه کل ما قراره این اصلا وقتی به امکان فلسفی نذاره این مجرد اکتماله مثلا اگر یعنی آقا کلانی 15 بچه زادی یومیه خب خب خب. این حالا اینگر قبول فضر رو دقیق سمدید این نشونه مراد از این امکان احتمال به جای امکان احتمال ببین امکان احتمالی ادراکی وقتی یک امکان ادراکی تو ذهنتون میاد این ارزش علمی هم نداره حقوق بله من یه جایی که موضوع مورد که در یک شکم 120 ساله بذارید بهش تعریف بگو ممکن ده. ممکن البته اکثر امکان اعتباری و حقوقی و ساعتی به هر امکان نیست یختان با خدای احسان دست این احتمال مراده این امکانی که در عبارت ابن قبرا آمده که لایو میکنه تعبد و بزن این نیز مراد این نیز احتمال این که حد داره اینه که میکنه اما این مرادش نیز آه خوی فهموندن مرادش امکان رقوعی یا با تبدیل ناینه امکان شرعی مثلا در مقابل امکان تکیمی اینجوری گرفتن تعبدی بعد ایشون فرمودن که حالا من الان ان شاءالله توضیحش رو باتون میخواستم کلام ایشون تموم بکنم شاید یک توضیح بدم بعد یک در نهایت یک گزارزه بحث بشه بعد ایشون ارا ای عرب صلی الله علیه فعلا ان شیخ علی انصاری اختیار امکان تعبد به ذهن و دعوا ان بناء الاغلا علی الحكم بالامکان مالا تصفات الاستحاله اگه گفته اصل عقلایی است که هر چیزی درش امکان هست مگه اینکه محال باشه ثابت بشه محاله بعد سه تا اشتال سالکپای رو مطرح کردن یک اشتال چهارم از مرحوم محقق نائینی نقل کردن بعد در سعی کردن که اشتالات کیپایی و مرحوم نائینی رو جواب بدن شد مطلب محصلی نداره که وقت آرو بگیریم اینجا دیگه خیلی من توضیح چون بعد اصلا میگم که این مطلب این راه هی که راهی که آره مطرح کرده سمه این نر قائل به استحاله خدا آقای مراسفه هم مشکل نداره چیزی تو توش نداره سمه چون اصل مطلب روشن نیست لذا ما خیلی خوب شما معتل نیکن برای مطلب بعد ایشون میگه قائل به استحاله استعده الا وجهین احد و ما راجعون الى آخر الى تکلیف. اما ما یرجه الى الملاد و ان اماره. معروف اینه شما گای امارهی ای که ایشون تعدیل به اماره کرده این توی این بحث رو من قطعه فرماییم آیان از کلمه زن مرادشون دلیل زنی رو گرفتن مثل خبر واحد یا مثل حجت زواحد مرادشون اینه اماره رو به ما تقویب علا وجود مقای و علا حرمت مقای مباقه همین اشتال را که روی محلات دلیل حلات همون کش نیمیگه شال معروف و لازمش اینه که مثلا به این که انسان در یک محصده واقعی واقع بشه یا یک محصده واقعی از دستش پرد بشه این اشکال به قولیشون ملاکی همین اشکال معروفه برمه و اما مایر جایل تکریف فا ها انل اماره الگیت تعبد و بها امکانت موافقتاً دل حکم واقعی اگر این اماره که به شعبت خورده مطابق حکم واقعی باشه لازم منهجیت حجیت ها اجتماع المسلم اگر مخالف باشه اجتماع زده ای نیا خب این هم اشکال معروف اجتماع مثل ای اجتماع زده بعد مرموم آقای خوی پس دو تا اشکال از طرف ابن قیبه شده این اشکالی ای که معروف ابن قیبه اول از دو می رو من نیدون در کلماتیت این تو زهن من نیدون در کلماتیت بعد مرموم استاد و حالا علیه جواب بده بعد جوابشون این که صغر اشکال در ملاد سه تاز. یا وجوب ماهوه مباه واقعا یا وجوب حرمت ماهوه مباه یا به عقص این یا نه وجوب و حرام واقعا حالا شد اینا یک کمی اخرف و اشد بیشون تا قرار بودن بلاخره این اشکال هست یه دفعه این شی مباه اماره میگه حرامه این شهی نیست یه دفعه حرام اماره میگه مباه, اماره میگه مباه این یک کمی سنگین یه دفعه حرام اماره میگه نه این واجبه این خیلی سنگینه خیلی ذهنتون رو مشبه این نقطه شدینه یعنی که ایشون سه مثال قرار میدن چون اینا درجاتش شرم میکنه یه دفعه مباهه اماره میگه واجبه این خیلی مشکل میداره اگه واجبه چیزی که بود و اگه عجابه این خیلی اشکالی سنگینی یه دفعه عکسشه واجبه میگه مباهه این ایک کم اذا به از این بدتره واجبه اماره من میگه حرامه این که خیلی مشکل میشه که در غیر کلاقه واجبه بنظرشون میگه صورت اول که مباه باشه میگه واجبه فلیس بیا کالو از ازل لا یرا گفتن ایشون هی صورت صورت کردن برای اینکه این در واقعش سه جوره یکیش عصبه یکیش خفی نه یک شدیده و همین تعریفی که خداوند تن حد کردن ایشون میگه از نظر شرعی اشکال نداره؟ چون اشکال داره؟ عقل مانعه می بینه که این مباه باشه و این واقع بشه بعدم مثال شرعی هم میذارم دو و مثال اورفی می مثلا در مثال شرعیشون مثل تشریع اده مثلا در مواردی هست که شاره حکم کرده به این که اده باشه با این که اقتلاط میاه قطعا توشید معضل حکم به اده فرموندن و اما در صورت دوم که اکس این صورت باشه ایشون میگه. مشکل نداره که با ان‌سداد باب علم شارع این کارو بکنه. ممکن ممکنه جعله احیاز بکنه، ممکنه است به این اماره مراجعه بکنه. و این اشکال نداره، این چیز خاصی لازم نمیاد. چون مکلف به واقع نرسیده، چون مخ... مکلف به واقع نرسیده، مشکل نداره که یک امارهی قرار بده که در اونجا بشه. این واجبی رو ساعت دوم میشه. صورت سومشون ایشون میگه که بله حراب و واجه و دیگه اکس هم دیگه مستلزم تفریت مستلحت میشه القای در مستلزه میشه لکن در اینجا از امرو دائرون میگه حالا شاره اچهار بکنم میگه بگید احیاس بکنم چون واجه و حرام احیاس ممکن نیست احیاس که نمیشه یا اماره رو است بده که اونجا هم همین که گفتین اشتال لازم میان بله و یا راه دیگه شید که فقط به قصر مثلا به ده قائم ست اشتباه میکنه در در باب انصدار در باب انصدار نداری در باب در باب انقضاه باب علم هم اشتباه میکنه بله موضاف به این که ایشون یک بحثی دارن که این داخل در انصدار ان من بعد توضیح عرض میکنم که روشنتر بشه بعد از از اینجا به این مناسبت ایشون وارد اقسام تبعیت میشن من قرارن عرض کردم در باب امارزد و مسلک اساسی هست، مسائل زیادی ایشا توضیح داد. من الان فقط میخواد لیست از مقالات ایشان و قسمتایی که مهمه اشاره بکنم. این تمام اینا شهر می‌خواد، احتیاج به شرح دقت بفرمایید در باب امارزد دو تا مسلک معروف هست که سببیات دو تا مسلک اساسی هست، بقیه شرح دیگه یکی هم تریقیات. تریقیات یعنی امار هیچ کاری اجازه نداره به خاطر یا میرشونه یا خطاسه ثواب اما سببیت نه ایجاد میکنه بعد از زمان شیخ به بعد که مرموم استاده من اینطور سببیت رو سه جور معنا کردن یکی معروف شده به تصویر و اشعری در بوزه های میگن تصویر و اشعری ما هو المنصوب الال اشاعره من لیس لیسه في الواقع حکمون اصلا در واقع حکمی نداریم با قطع نظر از قیام اماره اگر اماره نباشه حکمی نیست بل يكون قيام العمار به لهدوس مصلحت موجبت لجعل الحكم على سبب العماره من مسئله‌ای می‌گویند چون این مطالبی که ایشون نظر کردن واقعیت نداره این که مشکلات دنیای علم همینه کاری چیزهایی که به دنیا نسبت دادن که چیزی نیست قیام عمار سبب حصول یک مح... مصلحتی میشه که کف بر طبق عماره بشه خب اگر به این معنا غالب ایشون اشکال نداره چون اصلا نبوده که تعارض لازم بیاد یا تحلیل حرام لیکن ایشون اشخال میکنه ولی که این از سببیه بها معنا غیر و معقوله این فی نفسه این فی نفسه که معقول نیست الان مازکرنافی بحتل اجزا چون دور میاد چون در واقع که میگه این چیزی نیست تا من علم بهش پیدا کردن چیزی میشه اما آمن خب اماره بر چی میاد در واقع واقع که بعد از اماره خب این اشخال دور فه این نقیام الاماره علیه واقع. هم. تا که از طرف و علاقی آنها این اشاره معروف که است حالا مضافن الیکم و مخالفن به اجماع و روایات ادلله اشتراک احکام بین عالم و جاه این اجماع شیعه مرادش اجماع شیعه و مراد از روایات چند بار من اینا عرض کرن. در عبارات شیخ هم چند بار آمده خوب دقت بکنیم روایاتی که داره برای اشتراک احکام بین عالم و جاه من نداره چی گفتن متواتر روایات استفهامی ما یک روایت واحدم نداره که احکام مشترک روایات اینجوری که خداوند در هر واقعی حکمی داره اینجوری جوری داره. دلع اما این تعبیر که احکام مشترک بین عالم و جاهل روایت نداره شما نشه. روایات, روایات متواتری داریم ما من شیء الا و جافی کتاب و سنت. ما من شیء این داره. این میگن وقتی یه حکمون یعنی سوا آن آلم بشه یا جاهزه چون این خیلی عباره تفرار شده روایاتی که در اشتراک احکام بین آلم و جاهل بکنه ما یک دونه روایات هم نداریم که در اشتراک بکنه اشتراک به این معنام که توش آمده باشه که احکام مشترکتون بین آلم و جاهل بخط بودیم ما همچه روایاتی نداریم روایات داریم که احکام الهی در تمام موارد هست کل انا الله جعلد كلشه این حدا ولی من تعدل حد حدا حد. مثل باید اینج چ م غلا به ولی باشه ولی من تعدل و ال من تععد با باش. الله باشه الله خیلی حدا و علا من تعدل حد حدا مناسب با زوا عربی اینه و من تع. نه وله من تععدل حد حدا اون مناسب. خودش یاد گرفت این سببیتی این معنا باطله به تعبیر از زمان و شیخ خیلی مشهور شد تو چی از ما سببش میگرسه معروفه به تفسیر اشعری خلاصه اینه که, حکمی که آمد حکم نیست اماره تام حکم میشه خب میگن اماره بر چی میاد اماره علاقت علمدار چی واسه نیست اینکه دوم سببیتی که منسوب از به معتزله ایشون تعبیر کرد معروف به تفسیر معتزلی تو از ما معروف شده. یعنی ان الحكم واقعی کار متحققا معقت نظر عن الاماره الا ان قيامها من قبيل الخروج الى قیام قيام اماره مثل اینکه صدق في نفسه قد حسن با یک عنوان قبیل میشه یعنی اماره آمد عنوان عوض میکنه مثلا خب در واقع حرام بوده با قیام اماره حلال میشه عوضش میکنه در قيام اماره ای که از محسنات یا یکی از مقبلهاته دقت فرمایید این هم بعد ایشون میگه الا انه سببی به ها در معنا به این کانال امرن معفوله فی نفسه الا الا ان ها به بالاجما و روایه بعد معناه سببیه معناه مسلحت سلوکی که مرحوم شیف ایشون یک ایش شرحی از مسلحت سلوکی دادن چون ما بعد شر دیگری خواهید یه وقت رو به تکرار نمیگیم ما من مطالعه کنم بعد ایشون که میگن سببیت قد اختار از شیخ الانساری و طبعه او المحقق و نایین تو زهن من مرحوم محقق نایین به مثل سلوکی اشکال داران این اشترال خوبی پرمودن و علیه یعنی دفع اول اشکال اومدت رو من اونه قاید تصمیم کشف نه مثل عرض سلوکی بله الا ان سببیه به در معنا ایزن منوالایون که این مثل سلوکی رو نمیشه چون یک نهی از تصویبه. بعد ایشون شرم میدن چون ایشون شرحش ما بعد بررسیل میکنیم گیریم ما دو محطه بخونیم برد و مجمل کلام که المقام خلاصش اندر اشکال منسوب الى ابن قوه مندت من اصلهی علل القول به حجیت الاماران نباب سببیه بله بعدشون میگن و اما عقل تریگیه که فقط تریگیه داشته باشه. اشون میگن فصحی ها در جواب امر اشاره میکنند که این نظام المکلفین به تحصیل الایل و این فرز انتفتها و باده حرجه جن نوع نو المکلفین. این موجب حرجه. فلو قدمش در خلاف تحصیل، فلو قدمش شارو الحکیم مسهد تحصیل علنو علامت الواقع. الفائط اند مخالفت الامار لایت صابقی قرحان و کم دشاره من احکام مجعوله لگر از تسهیر علالنور من اختضاء المسلحت الواقعی خلاف با مسلحت اختضاء خلافی تعلق شاره انجام داد کل حکم به تهارت الحدید و مقتدر روایات داله علا ان انف الحدید بأسن شدیدن حوال حکم نجاستی و انزلن الحدید بیه شدید حکم نجاستش باشه الا ان الله سبحانه و تعالی حکم به سهارتی تسهیلا علل عباد به توقف كثير من امور معاش بر استماره حدیث اگر حکم نجاست می‌کردن این مشع مشکل بود طب خوب خدا رحم کنه هنوزشون آقای کتاب رو چاپ کرده برای حاشیه‌فایسل در طره علی این دو واقعیت این مطلب از کجا آوردهن اصلا چندی زبانه اینکه حدیث مجزه اخباری هم علی قائل می‌شد یه شوری معروفی هم داشت در قوله قال میرسد به بود یه کسی میخواست خوب بکنه آقا رو اون وقت ذریعه پس از آهن بود آقا گویا این ذریعه استولپ بود به بوسیله حل ترواشی رو تو آقا داشت نگیشی بود چون آقا داشت میگفت خب هوا میگفت از این معروف بهره می‌برد از میخواست که خوب این آغای که در لم این مطلبی که این مطلب که اختزا بر این بود بعد خدا مسلحه از این به تانشور بود ما مثال هایی دیگه داریم لولا این اشتاق به سوال خوبی ناییی بهتر بود لولا این اشتاق علامتی لحمتان اشتاق علامتان اشتاق علامتان سلسلی بر فتحه سلان تفریز المسلحات اول القاع في احیانا لا يوجه و امتناعات تعبود اضاقان افی خب سیدن از جالب مصلحت نوعی رو شما چطور فرض میکنیم با ترغیت سر اگر مصلحت نوعی رو میشه مصلحت سلوکی شو که مصلحت نوعی رد کردیم گفتید نوع از ترغیب حرریا یعنی هیچ چی تاثیر نمی‌کنه ولی مثلا آینه اینو به اینا نشون می‌دوره این کلیشه درنیه اگه فرض کنیم اینکه ایشون میگه یک مصلحت نوعی هست خب این شورا مصلحت شیوه‌ای میگه چه فرقی هم مصلحت؟ اینم مصلحت شیوه‌ای مستلزم تکیه حالا منافن الان غالب الامارات بر جمعه ها ترقون لا تأثیزیه منخبر اشاره. این هم اشکال دیگری ایشان. الان الالتضام بله. به امتناع تعبد دل امارفی فرض انتطاع باب علم مالایت. چون الان زمان انتطاع باب علم نیست. چون حتی در زمان حضور محسوم هم با باب به واقع امکان نداره لاسی علمعلم به واقعی جمعی کانلی لاسی ما شواض موضوع یا م ممکن ماعاداضن حتی حالا از ها بهاعمان این کلمه حتی از شووااض مووع بحث شماوا موضوع تو اصول م نیست ما از اوبل بر بگی تو بحث اون اونچه که ما در ووجیت می بحث شما ک هستیم مثلا شووااز موضوع داخل بحی کار مشاه نیست کار نیست کار اعام نیست بله و این ایشون نمیشن که خلاصهش این که تحبود به زن یه خلاصه ما تو اینجا تا بخص تکلیفیشان رو حالا مطبعه که ما عرض میکنیم خدمت آیون مطبعه اول در خود کلمه زن که ما سابقه هم چند بار علف کردیم اینا زن رو به معنی اینجوری که کشت ناقصه اصطلاح هم درصد و 60% و 70% و اینجوری به اصطلاح ما رو خواهیم کیف رو تبدیل به کم میشوند همچنین که در خود قرآن کلمه زن به کار برده شده چند بار انهم الا یغننون و هم الله یخرسون و مواردی که در قرآن به اصطلاح بکار برده شده و مقایسه شده اگر جنب بدون خودش مجموعی از آیاتی است مثلا این هی لا اتسمیتموا انتم و اباؤكم ما انزل الله بها من سلطان نماز این احساس میکنه. هر مطلبی که سلطان داره پشتوانه نداره این قبوله هر مطلبی که پشتوانه نداره سلطان نداره ما انتقل الله به همین سلطان که بعدها در لحظه منطق به جای سلطان بورتن خود کرد خود توش غلب اما سلطان داره تحبیر قرآنی شیده ما انتقل الله به همین سلطان خود کلمه ی زن با قطع نظر از مواد قرآنی در اصلانه زیره یه جایی که نوزیری باشه یه دفعه ظهور بروز روشن بعید نیست که کلمه علم رو در اصل لغت به این معنا به کار بردن یه که بروزی باشه من سابقاً هم این کلمه‌ای که از واهایی که در لغت و الان در فقه اللغه زیاد به کار برده میشه دروستر هست این بحث های هرمنوتیکی دیدم که روش مسلمان‌ها می‌ذارن خاص خدای اصل مواردی که خود اسلامی ما بوده فرصم مثلا بحثی که من رو میخوام بگم قدیمتا اینجایی شکریه که من رو خصایت ازمه جنیده اون خلاصش اینه که یه بحثی که این معانی که از الفاظ، از اسواحه نه به این کیفیتی که ما میریسیم مثلا عین و لام و می عین و لام این اصلا خودش این ستا یک خاصیتی دارن که توش بروزه هر جور قرار بگیرن مثلا علمه یک جورش عمله یک جوریش لمه لمه ها بروست خورده یعنی اصلا توی لغت از هر نحوی عقب جلو بشن این ستا کلمه ایسا او در, در اول اختصاص نگاه با در کلمه این مطرحه می کنید کلمه و لمکه و کمله و ایمان رو پشتر هم بود صاحبه هم اشاره کنید این ارده هاییست که الان ازید اون شو ازید هست لغت هم آمده لیکن الان بشه در این دنیای محاصر ما برگی ها خیلی آمدن ما نموری بیشتر به توفه خلی دقام آمده آره من نموحا بگه بعد بحث وقت که وقت خاص لغت, لغت شناسید کردن جا شده اینجان این یک راهی دارن که میگرد اگر ما نگاه بکنیم انواع ترکیب که از این سلط میاد منوز در ارتکاز عربی اینطور بوده حالا علمه باشه عمله باشه البته شش صورت تصویر میشه عین لامومین لام و می شش صورت. گالیقات این لغت اینطوریه. گالیقات دو تاش استعمال شده، سه تاش استعمال شده. و لام با چهار تاش شده. اینطوری نیست که هر شش تا استعمال شده باشه. مثلا به مناسبتی در ذیل آیه نبع که سلامو تعریض میشین، فخر رازی داره فصوص و علامه ما فعلتم نازنی. میگه خود نون و دال یعنی اینا توی فواصل غم هستند. خود این سه کلمه در لغت عرب یه نوع استمرار ماندگاری اینطوری شده مثلا میگه ندمه بعد مدنه مدنه که مدینه هست میشه مدیشه مدنه مدنه همون ندامت جا به جا شده دمن چهار تا اونه که استفاده شده جا به جا میکنه اخر در هر لحظه چهار تا میخواستم نه دو از دوام چون الان میخوام بگم چیزی مثلا جدید غریبه نیست ما از هزار سال قبل میشه در این یه ارتک بحثی که نحوه لغت این یکی حروفی که ما است، این صوته مثلا اینو لامومی یه خصوصیتی داره یه کتابی یه جمعه هر چیست اون هم این اشکال این توضیحات نقطه که مثلا اینو لامومی مثلا این خصوصیت داره این خصوصیات رو فهمیدن یکی از نکاتی در لغت هست انصافش با خصوصیتی که ما داردنیم تو علم بروز خلاصه زهوره ف خود علمه عمل لمعه نگاه میکنه یک نوع حالت بروز ظهور روشنی در مقابل ذهن ما مشکل زن اینه که چون هر کدوم مکرره اون شیشهت میشه میاد <تصفح> اون هر کدوم شیشه میاد اون در حقیقت توش شعر میاد زنا نز اینطوری میاد یعنی <تصفح> چرا نه صابطه ذل وقت ارتکال انسانی ذل اینکه ثابت دل وقت عقل صحیح چه جوه نداره و در لغت عرب دو جور مصرف شده هم با را و هم با لاد این در قرآن هست اما هو به رنی اون با لاده اونجا گفتن معنی حریف بخیر اینطوری نه اونم به معنی همون معنی هست. ما به نظر ما چه لاد باشه چه لاد باشه یکیه و یه بحثه هم در قرآت خیلی مشکلی اصلا در قرآتی که از بحثی مهم بشون کیفی از تلفوت الله و الله ولی صبعا نش بعد این که چند قول نهر بکنه جلو دهانه پروی دهانه کسان زندگیناست بعد آخرشون در انصاف این که خیلی مشکل ازاین هست واد رو میگه خیلی بود کو این این که قرآنی همه عرب بودن خوندن واسه این چه مشکلی پیش اومده بود کردن این هم چرا تلفظ میکنن میخونن در طول تاریخ این همه غیر عرب خونده در آی قران مثلا واقعین که چون مثلا در سوره هم اله مغلول و زالین دو تا تکرار شد حالا علایو حاله یکی مسئله قرائتی یکی فارغ لغوی شه که از قدیم هم بحث بوده نواب با کتاب دارن فرق ال... لا... لا... چاپ شدن و بیلن کتابانو ندارن نخوندم دقیقا که اصلا این بحث داره که آیا و این اختصاص به این دوتا نداره صاد و سین مثل سراط و سراط این بحثا در لغت عرف هست به ذهن من میاد فرق این دوتا شاید به لحجه باشه از که ما الان داریم مثلا یه ذهنی یک داریم داری یه شهرستان در جیدیه احتوال خبی میدن فرقی به این دوتا به لحجه باشه و با تعمالی که در موارد اشتقاقش و خصوصیاتش اینا اونی که ازش میفهمیم رن به معنی یک نوع زیغه باز نیست بروز نیست یک نوع داره الا این که این زیر دو جور تثیر میشه یک دفعه این زیر به لحاظ زیربنا و سلطان به تعبیر قرآن اون زیربناش زیر داره یه دفعه اون درجات ادراکی زیغ داره مثل انسانی که ضعیف می‌بینه، باید مثلا اینفت بزنید تا قوی رو بینه در, در اصطلاح اصولی بیشتر دوبه گرفتن. این زیغ را رو رو ادراک دارد اما شاید به اصطلاح قرآنی بیشتر اولی مراد باشه آه. این هم که آمادن گفتن زنگاهی دلوقت من یقینه این نیست مراز زن به معنای ادراک ناقصه ممکن ما یقین فیده اولان غالباً بهتر یقین فیده دارن تو علمان ممکنه یقین هم پیدا بکنه گفت اینا برگز نما آبا اینا علا آبا نه علا آسانه مختلف میگه این سنت جامعه ما بوده قرآن میگه خب برگردیم این سنت چی دیر بنایی داره،, داره اون پشت ما ما این دیلوا اسماء سمیت و هم میگه مراد از اینا همه امارات اوغلیه هستن ایشون مثل ما نزدیک یه دفعه ببینی خوب دقت بکنی ما اصلا که این بحث این بحث مثلاً این مراد از زن چیه اصلا زن یعنی چی یعنی ادراک ناقص ولو سیر بناش محکم باشه یا ادراکی که زیروناش محکم نیست به این لحاظه ادراکی نیست ممکنه ست در پیشش باشه هزار در ست پیشش ازید که بیان در ست دار با که این این همه اللای از این تحرسه این گمان ما این گمان به درجات ادراکی نگاه نکنید این خوشوانه نداره ما انظر الله و قلها تو برها نکنم این که بیر قرآنی دنبال قرآن دنبالی چه قلها تو برها نکنم این کنتم صادقی سر جنسی با واقع اگر حرفتون از واقع نشعب گرفته برها رو بیاریم یعنی دنبال چی بودن دنبال این بودن که ما به واقع برسیم راه درست به واقع رسیدن دقت قتلیم این این دو تا نقطه اگر روشن بشه خیلی از مشکلات که ایجا حل میشه. آیا مراده از زن اون ادراک ناقصه که آقون گرفتن که اینقدر بحثم کردن امکان فعبدت حالا اون امکان هم به چه معنا یا مراده از زن مثلا مراده از زن نه همون ادراک ناقص کاشف ناقص گرفتن اینا زهنشون دسته با کاشف ناقص کالا من فردا؟ توضیحات بیشتر عرض کنم چون کلمه در مستاده اجمال داره توضیحات بیشتر عرض در کیفیت این مطلب آیا مراد از زن ادراک ناقصه یا مراد از زن اون مطلبیست که واقعی نیست ولی ادراکی سر باشه واقعی نبودنش هم خوب دقت بکنه یعنی برهان نداره، سلطان نداره خوب دفرق. تعمل کرده حالت شما سر درسته، سلطان تمام این صحبت این بود چون صحابه برگشتن به قیاس و رئی اهل بیت میگویند این زمین یعنی چی یعنی برهان نداره چون قیاس و رئی ذهنیت شماست شما با ذهنیت احکام اداری کشتن می‌کنید بس سردرست نیی ممکن است به دادگو پیدا میشه این بود که قیاس زمین نه این که ادراکی شده کرده ممکن است روشنشون چی باید بگی؟ دیواشتاش داده مطلب اصلا دو زمینه بحث. یه بحث یک بحث زمینه یه در اون جهان و یک بحث زمینه یه در این جهر میشانا از در خود زمینه یه حسولات و اصولا اصل مطلب حجی بلا اصل حجید زن اصلا روشن بشه بحث هم چیه؟ و بحث اولیهی که از زمان صحابه شروع شد درباره باره مزنه و اشتهاد مقابل قیاس و رأی و تعری مراد چیه